شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم یک در تعیین ساعت اتخایی میکنم نه همانگی شده و بعضی درستان هشت میدانستن بعد یا هشت و نیم اتخایی نیقدر شروع میکنیم و اتخایی میکنم از اینکه سر ساعت جلسه شروع نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت سروران خودم از آسیل معظم حج و سلام بر عزیز این جلسه بهته من یک ارائه گذاشته شده درباره معرفی مصاحف کهن قرانی و تاثیر این بحث ها در مباحث حلوم قرانی که خب شما از بنده بیشتر در این زمینه قرودوشیدید صدای من واضح و کافی میرسه و در این ارائه که ما تو دو بخش یه فاطله تنفسی برگذار می‌کنیم. من میکوشم که اه اهمیت مسئله نسخه های قرآنی نسخه های کوهن قرآنی به خصوص در قرون اولیه قرن یک دو سه چهار رو برای شما با مشاهده و مرور خود نسخه ها و مسئله هایی که در درون نسخه ها هست ارائه بدم و به مناسبت دشار یکی از مهمترین این نسخه ها متعدد به قرن اول که اون نسخه به نام مصحف مشهد غذابی شناسایی میشه و شناخته میشه و اسم داره و منتشر شده از طرف محصه در قوم و کتابتانه <تصفح> افتان قدس غذابی در مشهد اون رو هم انشالله معرفی داشته باشیم طبیعتا ما در اینجا مجبوریم یه سری از بحث ها رو به دانش شما دوستان اهل فضل باقضار بکنیم. دانشان مباعث علوم قرآنی رو من خیلی جز عباره نمیشم چون فرصت نمی کنیم به دانش رسم قرآن یا همون مضبط و شکل قرآن که یکی از مباعث پایه‌ی علوم قرآنیه بحث‌های مربوط به قراءات، بحث‌های مربوط به عد الآی یا سیستم‌های مختلف شمارش آیات، نامگذاری سوره ها، عبایث اینچنینی که تو پایه‌های علوم قرآن از شما, شما همه باهاش آشنایی و تبحر داریم، من می‌کوشم این مباحث رو در درون نسخه های باقی مانده از قرآن از قرون قدیم وارگولتشون نشون بدم و مسئله هایی که این نسخه ها میتونن برای ما تولید بکنن و طرح بکنن و تأثیری که این نسخه ها میتونن برای مباحث علوم قرانی ما داشته باشن مثلا ما در باب تحریف قرآن یا برای اثبات اصالت یا وساقت متن قرآن چه استفاده میتونیم از این نسخه های قرآنی بکنیم به این مباحث بیشتر بپردازم تکیه من در درجه اول بر روی نسکه های کوهن قرن اول، دوم، ثبومه، این دوره است که به خط کوفی نوشته شده یا به خط پیش کوفی که اصلا هم ما بهش میگیم خط حجازی که نشون میدن اینجا تصاویر اونها رو و تلاش میکنم که از درون اونها این مباحث رو مرور کنم نُسخه های قرآنی که امروزه در اختیار ما هستند به ما کمک میکنم که اولا در مورد متن قرآن ببینیم با چه چیزی مواجه هستیم یعنی متن قرآن رو در درجه اول به ما ارائه میدن خیلی از ما ممکنه که متن قرآن رو به شکل شفاهی از نسل قبلی خودمون حافظ شده باشیم ولی اینکه در قرون قبلی آیا کتابی نسخه ای از قرآن وجود داشته که 5 تا سوره اضافه داشته باشه، دوتا آیه کم داشته باشه، 5 تا کلمش فرق بکنه، این را از چه راهی میشه فهمید؟ یه راهش مراجعه به تنوع وسیعیت های قرآنی. بنابراین با متن قرآن، با املای کلمات قرآن که اصلاً هم دانش رسم و ضبط قرآن و شکل قرآن رو به ما میگه اعراب کلمات، با چه اعرابی، با کدوم که از اعرابها؟ یعنی با سیستم های مختلف گذاری این نسخه ها معرب،, معرب شدن و با چه قراءتی احیانم قراءات رسمی از این قراءات هفتگانه و گانه کدومشون توی این نسخه ها بروز و ظهور داره یا قراء، حتی قراءات شاز که شما در کتاب های علوم قرآنی پراهان در مدرشون شنیدین یا دیدین اینا آیا در نسخه های قرآنی اعمال شده وجود داره کدومی که سیستم‌های مختلف شماره شماره‌گذاری آیات در این نسخه ها پیدا میشه ما الان در این قرآن‌هایی که امروزه در خیارمون هست تو منطقه شرق جهان اسلام با سیستم کوفی عادت کردیم یعنی می‌دونیم سوره بقره 286 تا آیه داره ولی شما اگه برید دو قرن قبل سه قرن قبل دیگه سوره بقره هاشون 286 آیه نداره به خاطر اینکه اونا با سیستم کوفی کار نمی‌کنن عموما با سیستم بصری این پایان آیات رو مشخص میکنن مثلا علفلامی ممکنه آیه حساب بکنن یا نکنن و مثلا 285 تا آیه مثلا سور بقیداش خب ما تا سیستم مختلف آی داریم یعنی شمارش آیات داریم آیا تو نسخه ها کدوم یکی از این سیستم ها بیشتر یا به چه دلیل یا در کدوم منطقه این سیستم هست نظام آی هست و کدوم منطقه اون یکی نظام هست ترتیب سوره ها آیا سوره ها تو نسخه های قران با همین ترتیبی که ما میشناسیم همیشه نوشته می شده یا ترتیب های دیگی هم احیانا وجود داشته شما شنیدین یا همه ما میدانیم که بعضی از صحابه پیامبر مصحف هایی داشتن در منابع علوم قرانی جزئیات اینها ذکر شده که مثلا ابی عبید ابیه ترتیب سوره هاش اینجوری بود یا ابن مسعود یا امام علی ترتیب سوره به شکلی دیگه ای بود و این نسخه هایی از قرآن هستن که ترتیب سوره های اونها متفاوت باشه و به قرائت معروف عثمانی نباشه. تقسیمات قرآنی، قرآن رو ما امروزه معمولا تو 30 جزء میشناسیم، ولی ما تقسیمات دیگه ای هم داشتیم. تقسیم قرآن به 7 جزء، به حق طاره یا به 14 بخش یا به 28 بخش یا به 150 قسمت یا به 10 قسمت، تقسیمات خیلی متنوع هستن. در نسخه های قرانی قدیم با این کدام که از این تقسیمات و به چه دلیل یکی از این تقسیمات حالا یادم افتاد که در یک روایتی در کافی چند وقت پیش میدیدم که امام صادق علیه السلام که من یک مصحفی در خانه دارم که مجزئون دا علی 14 قسمم یا جزءا این تقسیم بندی 14 تایی در قرن دوم امام صادق علیه السلام فرمودن که من نسخه قرآنم 14 تایی تقسیم بندیش مثلا خب اینا رو ما تو این نسخه ها میتونیم ببینیم نامگذاری سوره ها الان من تا میگم سوره غافر شما همین میگین که من دارم سوره 40 و میگم یا سوره زمر سوره ولی ولی مثلا شما اگر تو قرن 80 میگفتین سوره سجده هیچکسی از مخاطبان شما نمیفهمید منظورتون چیه آیا شما سوره 32 و دوم رو دارین میگین یا سوره 41 رو دارین میگین چون به هر دوری اینا میگفتن سوره سجده یا اگر میگفتین سوره قلم خیلی ها که سوره ۶۸ که سوره نون و هست یا سوره نرد و که سوره اسم ربکلد ازی خلق اون هم اسمش خیلی وقتا سوره قلم بوده پس نامگذاری سوره ها تو نسخه ها خیلی به شکل واضح و عینی خودش رو میتونه به ما نشون بده و توی این ها ما انواع خطوط مختلف کوهن رو میبینیم البته خیلی شده دیگه است که توی این پاورپوینت من الان خیلی جا نم انواع خود فکوه هم و تنوعی از تحول آرایه ها و تزئینات قرآنی رو که در جای خودش خیلی مهمه و بشن یه بحث علوم قرآنی نیست من خیلی الان بهش نمی‌پردازم. بریم به سراغ قدیمی ترین نگارش های قرآنی که امروز در افیار ما هست یک گزارشی ابن ندیم در الفهرست خودش نقل کرده که آغازگر بحث منه این اقارت ابن ندیم هست در کتاب الفهرس که وقتی به توصیف خطوط برجامانده از قرون نخست می‌پردازه به ما میگه قدیمی‌ترین خطهایی که در خط عربی باقی مانده خط مکی و مدنی هست و بعد از اون خطی است که اصطلاحاً بهش بصری و کوفی میگیم در توصیف خط مکی و مدنی یه ویژگی مشترکی میشماره که این منتعلقه به مکی و مدینه یا اصطلاحاً به منطقه حجاز مربوط میشه مکه و مدینه بالاخره هر دو این منطقه قرار میگیرن یک فعال مکی و مدنی که فی علفاته‌ی تغییرشون ایلا یمنه یا تو بعضی نصائح ایلا یمنه لیل، و اقل اعصابه. تو خط مکی و مدنی شما یه افتادگی به سمت دست راست و به سمت بالای سرت می‌بینید. حتی که نگاه میکنید تو گرافیک کلیه خط یک افتادگی به سمت بالا می‌بینید و اقل. و فی شکلی انزاع و یاسیر. تو شکل کلی این خط وقتی نگاهش می‌کنین یک یک تمایل مایل اندکی دیده میشه خط کوفی رو احتمالاً شماها خیلی جاها دیدین تو بناها تو بعضی از نسخه‌ها تو تصویرایی که تو اینترنت این برونبر یا حتی خیلی هم ممکنه از نزدیک نسخه های کوفی قرآن رو دیده باشین ولی یه تفاوت خیلی بازهی در این خط مکی و مدنی هست با کوفی ها که اون حالت استقامت و ایستادگی به سمت بالا رو به حالت افتادگی و همین چیز دیگه ما اصلا همین روز خط ایتالیک یا تو تایپ کردن حالت کج میبینیم اینو تو نسخه های حجازی میبینیم غربی ها از حدود 2250 سال پیش این جمله ابن ندیم رو که دیدن وقتی به سراغ نسخه‌های قرآنی داخل کتابخانه‌های خودشون رفتن هر چی قرآن دیدن که حالت افتاده یعنی خطش قدیمی قرن اول دوم سومه و افتاده به سمت راست هست اینو اسمش رو گذاشتن حجازی گفتن این خطش حجازیه به خاطر این وسی که ابن ندیم در این گزارش خودش آورده که حجازی جامعه بین مکی و مدنی میشه ولی بر اصطلاح حجازی که ما الان به کار میبریم یه اصطلاح جدیده یعنی تو سنت اسلامی شما برین مثلا کتاب المسانه فست جستانی رو ببینین یا فضال رو القرون ابو عبید رو ببینین این اصطلاح اونجا نمیشنوین این اصطلاح جدیده و از همینجا برخواسته از این به بعد برای سهولت کار ما به این خطی که ویژگی افتاده و مایل داره بهش میگیم حجازی و در مقابل که همون خط کوفیه حالا یه چند تا تصویر حجازی رو با هم دیگه مقایسه می‌کنی ببینید تصویری که در سمت راست هست یه خط حجازیه و همون ویژگی کلی که در شکلش حالت افتادگی به سمت راست هست واضحه اون دوران تصویری که شما می‌بینید میدونم این نور بالای سر من اگه میشه کم بکنن که تصویر اگه دوستان فندی بتونن کمک بکنن خیلی خوب میشه چون از فاصله دور بعضی جاها نیاز داریم که نه یه کمی در ادامه خود واضح نیاز داریم که بعضی چیزا دیده بشه من این لیزر اینجا رو هم بله الان لیزر هم شما اونجا خب ما تو, تو سمت راست یه قرآن هجازی میبینیم و تو سمت چپ یه قرآن کوفی که متعلق به قرن دوم سوم هست بله ممنونم. این اینم یه نمونه دیگه که یه قرآن حجازی رو در مقایسه با یه قرآن کوفی سمت راست یه قرآن حجازی می‌بینیم سمت چپ یه قرآن اه... کوفی می‌بینیم. حالا به جزئیات درونش فعلا زیاد کاری نداریم. اینجا هم همین نسخه ای که در یمن نگهداری میشه سمت راست یه قرآن حجازی سمت چپ هم یه نسخه‌ای است که در موزه ملک در تهران نگهداری میشه. باز اینجا یه نسخه هجازی میبینیم میبینید توی نسخه هجازی حالت شلختگی و بینظمی هم وجود داره خیلی سچبندی ها و, و راست و منظم نیست و تو سمت چپ یا قرآن کوفی می‌بینیم و قطعه هاشون هم یک تفاوت جالبیه تمام نسخه های هجازی که تا اینجا دیدیم قطعشون عمودیه و نسخه های کوفی که می‌بینیم همه قطعشون افقیه یا بیازیه عموما این هم یه نسخه آخر که این نسخه آخر همون دو برگ معروف که در دانشگاه بیرمنگام چند سال پیش خیلی در موردش اطلاعات پخش شد و تو فضای فارسی هم خیلی اطلاعات زیاده درمید دو تا برگ میشتر نیست از یه نسخه هجازی که در موردش آزمایش کربون دیتینگ و سالگابی هم شده در مقایسه با یه خط کوفی که در سمت چپ چ حالا به ویژگی های کلی نسخه های به خط هجازی میخواییم بپردونی یا همون خط مایل اصطلاحاً مایل هم بهش میدیم اولین ویژگی اینه که اینا در قطع عمودی هستن عموماً در قطع شکلی که نوشته میشدن در قرن اول قطعشون عمودیه بعداً در قرن دوم سوم عموم این نسخه ها تو نسخه های خط کوفی قطعش میشه بیازی و حالت افقی پیدا میکنه شکل باز شدن کتاب و قرآن دومین نکته اینه که خمیدگی کلی به سمت راست دارن این هم که همین الان در موردش صحبت کردیم سومین نکته اینه که در نسخه های حجازی از تمام صبح پوست برگه تا حد ممکن استفاده میشه پوست یه امر بسیار با ارزشیه و تو قرن اول خیلی ریز تمام، سطورو میکنن و رهاشی بزرگی و نظم بندی و اینا وجود نداره عدم تقید به نظم سطور و صفحه آرایی رو میبینیم بعضی از صفحات می‌بینیم مثلا کاتب خطو کج رفته بالا بعد اومده پایین حتی توی یه صفحه ممکنه حتی که نه قطعاً این توی یه صفحه 20 تا خط می‌نویسه تو صفحه دیگه 25 تا خط می‌نویسه هر چقدر جا بشه ولی تو نسخه‌های کوفی ما به نظم می‌رسیم اگر کاتبی یه قرآن رو تو صفحه اول با 700 شروع بکنه تا آخر قران با 700 جلو میره دیگه اینکه در کتابت صداها صدای آ صدای او صدای و صداهای دیگه صدای پایین صدای ای ما نقص میبینیم مثلا کانه رو میبینیم کنا مینویسن به اسقاط علف، الفش رو نمی نویسن. قاله رو قاف و لام می تو قرنه اول کن و فراوان از این چیدا میبینید یا کلمه مثل شعی به عکسشه شعی رو با یه دونه الف می نویسن. مثل شای اینجا نشون دادم شای می نویسن مثلا علور و علول الباب علول علم رو, رو،, رو،, ال رو واقع دومشو نمی دارن قلاع الباب می نویسن اینا جز به بیشگی است که در نقص صدا می بینیم قرنه اول غرائب املائی دانش رسم رو شما همه باش آشنا هستین رسم مصحف یا اون املای کلمات قرآن که قواعدی داره در قدیمی‌ترین منابع مورد ذکر شده مثلا دانی در قرن پنجم این کتاب مهنهش هاوی همه این جزئیات هست شاگردش همینطور ابو داوود سلیمان بن نجاح در کتاب مختصرات التبیین به حجات تنزیل خب اونم هم همین جزیات رو بیان کرده و این نسخه ها که تو عربستان و جاهای دیگه به عنوان مصحف رسمی جهان اسپان پخش میشه اگه شما به آخرش نگاه بکنید دقیقا از همین دو نفر اسم بردن به منابع همین دو نفر به اسم شیخان به اینا میگن شیخان در علم رسم حالا شما تو این نسخه های که تو این کتابا که نگاه می‌کنید می‌بینید که برخی از کلمات قرآن رو در موردش هیچ حرفی نزدن یه املای خاصی نگفتن یه شکل خاصی از کتابت درمادش حرف نزدن اما تو نسخه های حجازی میبینیم اونا رو نسخه های حجازی توشون غرائب و رسم وجود داره غرائب یعنی به شکلی بسیار کهنه کهنه تر از اون چیزی که اعمه رسم در کنابای خودشون ذکر کردن مثلا کلمه مثل الاه الاه رو هیچ, هیچ کدوم از اعمه رسم غیر از اله و لام و ها جور دیگه ای نگفتن همه گفتن علف لام ها ولی تو نسخه های حجازی میبینید اله رو به صورت علانیه می یه دندونه اضافه میبینید این کهنگی املائی رو یا غرائب و رسم رو شما در نسخه های حجازی میبینید من چند تاشو اینجا گفتم مثلا ج توکم ج توکم یا ج ناکم ج تعش تع اینا همه با یه علف اضافه نوشته میشه مثل جای توکم نوشته میشه اینا رو من تو خود تصاویر نسخه‌هام نشون میدم ویژگی ششم شیشم اینه که تک تک آیات تک تک دونه دونه آیات در پایانشون یه علامتی گذاشته می شود که نشاندهنده پایان آیه هست شما میگه خب طبیعیه که باید بذارن وقتی آیه تمام میشه باید بگن اینجا پایان آیه است. ولی این از ویژگی های نسخه های حجازی در قرن اوله شما به نصفایی کوفی در قرن دو، سه، چهار میرسین دعایی بر نگذاشتن خیلی بیشتره غالبا نمیگذارن غالبا تک تک آیات رو پایانشو مشخص نمی کنن نهایت کاری که می کنن اینه این که تقشیر می کنن یعنی هر ده تا آیه یه علامتی به عنوان عشر ده تا بعدی عشرین ده تا بعدی سلاسین مثلا اینجوری می ذارن و بعدا تخمیز هم می کنن یعنی پنج، پونزده، بیست و پنج اینا را هم با یه علامت بلایه دیگه‌ای مشخص میکنند پس این که در نسخه های حجازی تک تک آیات پایانش مشخص میشه ایک از ویژگی‌های های کهنه بودن اون نسخه هست از اون جالبتر این که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بسمله هم عد میشه یعنی همون علامتی که در پایان تک تک آیات میذارن همون علامت در پایان بسمله هم در نسخه های حجازی میگذار و این ابدا در نسخه های کوفی دیگه پیدا نمیشه نه در نسخه های کوفی پیدا میشه نه در سایر نسخه های قرن پنجم، شیشم، هفتم، هشتم، نهم، هم، هم تا همین عرار حتی شیعیان حتی علمای درجه یک شیعه که ازشون نسخه باقی مونده قرآن رو به کتابت خودشون کتابت کردن در همین حرام رزوی علیه سلام وقف کردن اونا هم حتی دیگه در بسم الله الرحمن الرحیم علامت پایان آیه نمیگذارد ولی تو قرن اول تو نسخه حجازی اینو میبینی پس این میشه یکی از ویژگی های خاص نسخه های حجازی بسمله به عنوان یک آیه اختلاف قرائات. اگر سوال درسم. دو آیت. دو آیت. از نه نه نه این منشایش برمیگرده به عدل آی اون قسمت قبل تر گفتم ما یه چیزی داریم به نام شمارش آیات اینکه آیه کجا تمام میشه این یه علمه از قرن اول از همون قرن اول پایان قرن اول این روایت ها شکل گرفته که روایت کوفی کجا رو پایان آیه میدونه روایت بصری کجا رو میدونه شما اگه به همون مقدمه آغاز مجمع البیان مراجعه بکنین کتاب های اهل سنت هم لازم نیست ما شاید 45 تا کتاب همین الان از قرون اولیه داریم فقط راجع به ادلهای فقط راجع به ادلهای مستقل به اینا از نمی به خود مجمع البیان اگر مراجعه بکنین تو مقدمه به شما این هفت سیستم مختلف رو میگه که در مدن سیستم های نظام ادلهای کجا؟ چه و اول هر سوره هم که تفسیر اون سوره رو میخواد آغاز بکنه مثلا میگه سوره رعد تعداد آیاتش مثلا چهل و ست تاست بنابر کوفی چهل و, هفت چهل و شیش تا، بنابر مثلا حمسی یا دمشقی یا مثلا مدنی اول این هفته سیستم رو برخی از مفسران ما در درون این هفتاد سیستم قائل به تفصیلات جدید هم شدند یعنی اینکه چی یعنی در قدیم من بوده علامه طباطبایی حد می‌زدن که برخی از این آیات یک آیه حساب شده می‌تونه یه پایان یعنی این از خارج از اون هفتاد سیستم این نظر مرحوم علامه طباطبایی به اینجا برمی‌گرده به مسئله عبدالله برمی‌گرده به مسئله بسم الله برنمی‌گرده اختلاف قرائت بله. عبادم عبادم عبادم یعنی از اگر توقیفه بود که نباید هفتان بود. عبادم عبادم نه نه اتفاقا نسخه شناسی همین رو مخاطب ما بگه یعنی شما اگر بتونیم اگر ما بتوانیم از مدرسه که توش دست خوندیم و تو دانشگاه و مسجد و نماز جمعه و فضاهای ای جدا بشین بریم عقبتر بریم به خود شواهد به اون چیزی که در منابع عینی ما وجود داره دیگه این صبات رو نمیبینیم حالا آماده باشیم برای چیزهای خیلی بالاترش نامگذاری سوره ها که اصلا اصلا چیز مهم می نیست حالا شما سوره مثلا بنی اسرائیل رو بگین بنی اسرائیل یا بگین سوره اسراء یا بگین سوره صبحان اینا که خیلی مهم نیست. اینکه یه سوره جابجا بشه الان آماده باشیم برای اینکه اونا رو ببینیم در نسخه‌های قدیمی از این چیزا هم پیدا میشه احتمال قرائت احتمال قرائت که دیگه معركه آراس و از قدیم از قدیم ترین منابع ما تنوع هفت قرائت، ده قرائت و 14 قرائت هر کدوم اینا با چند راوی یا دو راوی یا سه راوی با تکسر فراوانش و قرائات شواز یعنی خارج از اینها قرائات حتی منسوب به صحابه اینا چوده که در منابع ما ذکر شده ما تو نسخه های قرآن تو نسخه های قرن اول این رو به شکل خیلی بیشتر وفور اختلاف قرآه میبینیم و حتی قرآهات شاز منصوبه به صحابه که تو نسخه های بعدی نمیبینیم اینا رو تو قرن اول میبینیم این همی که از ویژگی های تاریخی نسخه های اولیه ماست عدم رعایت ترتیب رایج در چینش سوره ها الان ترتیب چینش سوره های من یه ترتیب عثمانیه سوره فاتحه بقره آل امران نسا، مائده همینجوری برین جلو انعام اعراف فراغت ولی صحابه تو قرن اول که با این چینش همشون یکسان عمل نمی کردن که بعضی از صحابه ممکنه بود با سیستم های نظام های چینششون فرق بکنه ما مصحف های داریم که تو قرن اول به همین خط حجازی نوشته شده اند و اینها ترتیب سوره هاشون این ترتیب رایج ما این اینکه چنین چیزی رخ داده باشه در تمام منابع کهنه ما ذکر شده یعنی تو تفاسیر ما ترتیب سوره های دیگر صحابه ذکر شده تو منابع علوم قرانی ذکر شده تو همین فهرست ابن ندیم اینا ذکر شده اما اینکه ما بتونیم واقعاً به چشم خودمون یه نسخه باقی مانده از قرم اول رو ببینیم که در اون ترتیب سوره ها و چینش سوره ها فرم میکنه این یه امریست که تو نسخه شناسی به دست میاد و شاهدهای نسخه شناسی براش داریم خب سه تا ویژگی هست که در آخر من آوردم این سه تا ویژگی مختص نسخه های حجازی صرفاً نیست بلکه تو نسخه های کوفی هم کما بیش ادامه هستند. یکیش مسئله کتابت پیوسته است این نسخه رو من اینجا ذکر می کنم برای اینکه به خانش این نسخه ها خیلی کمک میکنه. کتابت پیوسته یه اصطلاحی است که قبل از اسلام وجود داشته یعنی یه شیوه از کتابت هست که ربطی به زبان عربی به طور خاص و خط عربی نداره در کل منطقه بین النهره و حتی در اروپا زبان یونانی خط ابری خط سوریانی اینا کاتب وقتی متنی رو می نوش. و حتی در کتیبه های باقی مونده به زبان‌های باستانی در همین شوش و چیز در کرمانشاه و بیستون و این جاهای این خط میخی هم شما میتونید اینو ببینید کاتب وقتی متن رو می نویسه فاصله بین کلمات رو با فاصله بین حروف داخل کلمات فرق نمی گذاره لذا وقتی که عبارتی تمام میشه آخر سطر اگر اون کلمه کلمه بزرگی باشه نصفش رو میشکنه قط تقطیع میکنه و نصف دومش رو میبره اول سطر بعدی مینویسه این کار ما بهش میگیم کتابت پیوسته اگر کسی با کتابت پیوسته مخالفت بخواد بکنه که تا دو سه قرن کسی مخالفت نمی کرد اول اسلام اگر کسی بخواد مخالفت بکنه باید کار بکنه باید کلمه رو اون پایان تمام بکنه ولو شده ببرتش تو حاشیه و کلمه رو نصف نکنه این از قبل از اسلام وجود داشته، تو نسخه های حجازی وجود داشته و تو نسخه های اولی اولیم کمابی شما این رو بینید. این نکته اول نکته بعدی این است که در نسخه های حجازی شما تزهیب، سرصوره، آرایش های آغاز سوره خیلی خیلی کم بینید، خیلی ساده میبینید اصلاً وجود نداره، یا اگر باشه یه خط ساده، یه دالبر دالبر خیلی ساده است عموماً کاتبای نسخه های حجازی تو قرن اول سوره که تمام میشه یه فقط سطر فاصله میگذارن خالی میگذارن و سوره بعدی رو شروع میکنن خود اون فاصله خالی جدایی و انتهای سوره قبلی و ابتدای سوره بعدی رو خودش نشون میده بعدها ها کسی ممکنه بیاد اون وسط اسم سوره رو با یه قلم قرمزی بعدن اضافه کرده باشه ولی اصل نسخهای حجتی خیلی ساده است خیلی خیلی ابتدایی از این جهت ولی شما تو های کوفی دیگه تبهر اون آرایش دهنده و اون مذهب اون کسی که تذینات رو اضافه می کنه اونجا می بینیم. تو سرسوره ها می که از رنگ مختلف از تلا استفاده میکنن که آرایش سوره رو بالا ببرن و آخرین نکته این که وجود صحب و اشتباهات مکرر کاتب صحبی امر انسانیه هم در نسخه های حجازی پیش می اومده و هم در نسخه های کوفی بعدی فقط فرقش اینه که تو نسخه های حجازی این اتفاق این رخ داد خیلی بیشتره تو نسخه های کوفی قرن 2 و ما یک نظم بیشتری داریم ها بیشتر میشه بازخوانی میشه چک میشه و اشتباهات کاتب رفع میشه خیلی نسخه های کوفی از این نظر کم غلط تره من نمی‌گم بی, بی غلط خیلی نسخه های کوفی هستن که توش نسخه منثور به امام علی علیه هست در حرم ادبی در نجف یه مقاله خیلی مفصل من در قرار بود این چاپ بشه من توش 33 تا اشتباه کاتب فقط پیدا کردم حالا مسئله بحث, بحث اعتراف قرائت و اینا اصلا جدا اشتباه قطعی کاتب که خب قطعاً امام نمیتونه این اشتباه رو مرتکب شده باشه ولی نسخه کوفیه نسخه کوفیه متعلق به قرن دومه ولی خب منصوب شده به اموی پس تو نسخه کوفی هم ما داریم اما تو نسخه های حجازی خیلی بیشتر چند تا تصویر ببینیم این نسخه این نسخه سمت راست یه نسخه ای که در سن نگهداری میشه و میبینید بین دوتا سوره فقط یه فاصله خالی گذاشته شده در این نسخه سمت چپ هم باز در سن آن نگهداری میشه اون شلختگی و بینزمی تو نسخه سمت راست میبینید اصلا تراز پایان سطر وجود نداره و تو هاشیه تا داخل لب برگه هم کاتب کتابت میکنه این هم دو نمونه دیگه از نسخه های حجازی که فاصله بین دو تا سوره فقط یک سطر خالیه همچنان که میبینید بعد از بسم الله الرحمن الرحیم یه علامت تا نقطه اینجا وجود داره تا نقطه کوچیک این علامت پایان آیه است و این علامت دقیقا مثلا در اینجا هم به کار رفته این همون علامتی که در پایان این آیه میبینیم در اینجا هم بسم الله الرحمن الرحیم یه علامت 4 نقطه یا 6 نقطه اینجا می‌بینیم که این دقیقاً همون علامتیه که در تک تک پایان آیه ها پس بسمله رو علامت می‌ذارم پایان یعنی عد می‌کنم چند تا بسم الله الرحمن الرحیم اینجا ببینیم که من بزرگترشون کردم اینا رو ببینیم همین علامت پایان آیه علامت پایان آیه علامت پایان آیه بعد از بسم الله این علامت پایان آیه یه ستون از نقطه است این سه تا نقطه است، این یه شیش تا نقطه است. تو کاتب های مختلف، علامت های مختلف استفاده می کردم در باره بعضی از کلمه ها <تصفح> که به رسم و املا مربوط میشه، اینجا با تفصیل بیشتری تو بیجگی های یازده گانه شمارده هم این یکی رو بیشتر توضیح بدن رسم که به همون چی میگیم؟ به رسم به املای میگیم به املای کلمات و شکل کتابتی کلمه میگیم این رسم در قرون نخست ناقصه برای نشون دادن صداها به شکل کامل اونجوری که ما الان همه صداها رو میتونیم نشون بدیم ازش از حروف استفاده نمیشه در قرن اول این نقص نقص نشان دادن صدا خیلی خیلی بیشتره مثلا در کلماتی مثل کانه و کانو اینا رو کنه و کنو می نویسن اینا نشان دهنده رسم ناقص هست یعنی هنوز رسم و املا کامل نشده قاله، قالت و قالو به شکل قاله و gala و غلط و قلو نوشته میشه. خیلی وقتها برای همزه وسط یه همزه میارند. در وسط برای اینکه یعنی همزه وسط رو با یه دونه الف نشون میدن مثلا سیعه این سیعه رو شما در املای امروزی با کرسی یا بینید یا اف اگر قرآن ها رو بینید با کرسی یا ولی اون موقع با همزه نشون میدن برای نشون دادن صدای زمه صدای O صدای او, او. همین صمه ساده از حرف علف گاهی استفاده می کنند. مثلا کلمه ای مثل توبا کلمه ای مثل رو مثل تاوا می نویسن این علفی که اینجا گذاشته شده نشانه زمه است. یا داوود رو داود، دال،, دال، علف، وا، دال هست اینا به شکل دوات می نویسن یعنی جای و علف وسط جا و این دلیلش این که اون علف بعد از وا فقط و فقط صدای او میده. داود خونده میشه در واقع. به عکس در کلمه مثل شعی همین علف وسط میتونه صدای فتحه بده شعی رو با یه علف مثل شعی می نمیزن و این صدای فتحه میده. صداهای بلندی مثل آرو رو صدای بلند آ رو با یه دندونه مثلا نشون میده. دهد این همه مثالاشو خواهیم دید مثل کلمه الاه که چند دقیقه پیش عرض کردم الاه رو با یه دندونه اضافه مثل الاهی می نمیزن آه. ببینید شما اینجا می‌بینید اینجا الان داود رو من نوشتم دوات. این, این اینجایی که من کرسه رو حرکت میدم میبینید اینجا دقیقا خب ببینید دوات نوشته شده این الف رو در نظر نگیرید اصلا این الف رو در نظر نگیرید این الف قرمز رو در نظر نگیرید روی دال یه دونه الف مخصوره گذاشتم اون صدای آه هست. صدای ناقص آه ولی برای نشون دادن زمه ای که روی واف باید قرار بگیره. او زمهه رو با علف نشون میدن داود اون زمهه با علف نشون داده میشه لذا شما املای کلمه رو دوات میبینید. یعنی تو ظاهر میبینید دال، واب، علف، دال هست الان توی تصاویر میبینیمش. اون هم آخری هم که اله بود کلمه زو این از اون چیزه خیلی خیلی عبرتنگیزه کلمه زو مثل قالو، مثل جاو، مثل ذهبو. اون علفه زینت که در آخر قرار داده میشه اون الف رو در برابر در آخر کلمه زو هم میگذارن زو در حالی که یه حرفه اصلا فیل نیست اون واوش هم واو جمع نیست زو یعنی صاحب ولی در مقابل آخر کلمه زوم این الف رو میبینیم تو این نسخه الو رو به صورت اولا می نویسن اینجا به حذف واو الرو تو اصلا واو وجود نداره اول الباب، اول ال و الی اولل و اونجا اولل هست توی قرآن اولو نیستش ها رو ببینیم اینجا اون رنگ های قرمز نشان دهنده ماده قاله است در یه نصف صفحه از یه نسخه قرآن به خط حجازی شش تا قالب و قالو و قالت می‌بینید که همشون به اسقاط علف هستند هیچ کدوم علف ندارن توجه کنید یعنی این نشان اینو تو نسخه‌های کوفی نمی‌بینید فقط تو بیجیه های قرآنای حجازی هست این مقدار رسم ناقص و نبود الف تو این مثال و آتای نا داووده زبور را ببینید داوود رو چه جوری نوشته؟ دال واف الف دال تو این پایینی هم همینطور یه دونه داوود می‌بینیم که دواد نوشته این الفه فقط نشان دهنده زمه است که برای اون واف داوود لازم داشته و این املا در شمال یعنی در منطقه دمشق و شامات، این املا خیلی رایج بوده اینجا کلمه توبار رو می‌بینیم چون این قسمتی که من زرد کردم یه دونه الف داره تاوا نوشته شده این توبا الفش واقعی هم بونده یعنی کسی نایمده اصلاح بکنه در این یکی نسخه که در وسط قرار دادم یه الفی هست کمرنگ شده اون الف یه نفر اومده بعدا پاکش کرده یعنی اصلاحش کرده ولی وجود داشته یعنی روز اولی که این نسخه رو می نوشتن توبا با یه املای خیلی خیلی کهنه و با یه رسم خیلی قدیمی نوشته شده بوده در این آخری هم خیلی کمرنگ باقی مونده اون علف و یه نفر اومده این تا رو به واق بعدن ورش کرده یعنی نسخه رو کاملا اصلاح کرده اینا سه نمونه از توباهای موجود در نسخه های حجازی هستند. شعیر ببینید اونایی که من آبی کردم یک، دو، سه، چهار، پنج، چهار پنج هشت تا کلمه شای تو این صفحه میبینیم که همه‌شون شای نوشته شده و اونجایی که من یک لوزی قرمز گذاشتم این نقطه لا اله الا هو این الاهی که اینجا میبینیم به صورت الای نوشته شده یه دندونه اضافه میبینیم و این یه رسم کهنه است که فقط در نسخه های باز حجازی میبینیم این پایینم یه دونه لا اله دیگه است که یه دندونه داره اینا ما رو به کهنگی املا و رزد در نسخه ها می رسونه بفرمایی من سرازو رو بودم کنم خیلی زدید آها, آها. سوال می کنن ایتالیک بودن خطا کم میشه. ببینید من از کردم که نسخه های حجازی ویژگی کلی گرافیکی خطشون اینید که تمایل به سمت راست دارن یعنی افتادگی به سمت راست دارن اما کاتبی که اینو تو حجاز می نویسه یا با کاتبی که ممکنه در اینو در منطقه مثل دمشق یا همس نوشته باشه دو تا کاتب، دو تا دستخط هستن یه کسی این درجه میلش رو ممکنه 45 درجه بگیره خطش اونجوریه یه کسی ممکنه مثلا 25 درجه یا 15 درجه بگیره به طور کلی یه افتادگی ما بینیم که این افتادگی تو نسخای کوفی اصلا وجود نداره تو نسخای کوفی همه چیز 90 درجه صاف ازداده است و خاطر این،, این تفاوتی که شما می‌بینید، به خاطر کاتبهای مختلف که اصلا خودشون هم دیگر رو نمیشتن یکی ماری یه منطقه یکی ماری یه منطقه, منطقه دیگر است و تفاوت در واقع سبک اجرا وجود داره این الو هم بله، این الو هم یه نمونه است برای که ببینیم اولول الباب، اولا الالباب نوشه شده نشون نمیده اینجایی که من حرکت می‌کنم. برای کلماتی که میخوان بله بزرگتر بشه خب، اینو تو بسم الله میگم الان بله چشم و از این اولوالباب، اینه اه ببینید بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم که عد شده شمارش شده، یعنی همون علامتی که برای تک تک آیات میذارم. ببینید اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات را کتاب و قرآن مبین، اینجا مبینه یه شش تا نقطه اینجا می بینیم خب این همین علامتی که در پایان این آیه می بینیم در پایان بسم الله هم می‌بینیم من عرض کردم که تو نسخه حجازی بسم الله اد شده و تو نسخه کوفی و تا الی زمان نهضات دیگه چنین اتفاقی نمی‌افته خب سوال می‌پرماین که آیا این نشان دهنده این است که بسم الله یه آیه نسخه من الان در مقام استنباطی بحث فقهی یا کلامی ابداً نیستم در منابع تفسیری شیعه تصریح شده قطعی تو منابع علوم قرانی شیعه بسم الله آیه دانسته شده منابع اهل سنت عموما بسم الله رو آیه نمیدارن ولی اینو که جالبیه که ببینید تو اول خاطر سرافت به سرافت اولیه خودش بسم الله رو یه آیه گوی تلقی میکرده و همون علامتی رو که در پایان بقیه آیات میتونه در پایان بسم الله هم میگذاشته این دلیلش چیه از یک قرن بعد از میانه های قرن دوم دیگه ما چنین چیز رو نمیبینیم این یه پنجوهش جدابونه میخواد من دیدگاهی دارم در این خدوط ولی انقدر بحث در این الان زیاده و هنوز بحث اصلی نرسیده مخوام خیلی نرم توی فریاد نه نه نه نه دوستانمون میگنی به خاطر این که این بسم الله با آیه بعدی توی یه سطح تراز بشه نه، ابدان اینجوری نیست. حتا نه نه نه. اصلا اصلا شلختگی توی نسخه های حجازی داد میزنه. هیچ که سطر بندیش تعداد سطورش توی سطر یکی نیست. کج و راستی استقامت اینا همشون بی‌نظمند. و چه سطر مستقیم باشه چه نباشه بسمدار الله رو پایانش این کارو میکنن. نکته نوکت میگن اینه که بسم الله در اینجا چون در ادامش آیه نوشته میشه چون همون سطح نوشته میشه باید جداش میکردن خب اگه این اتفاق باید این اتفاق می‌افتاد چون های کوفی هم باید بیفته چون تو قرن دومم دوباره بسم الله رو در ادامش آیه رو می‌نویسن ولی اون نقطه رو نمیذارن اون علامت پایان آیه رو نمیذارن این باید اونجا بقول مرو با تجر و با تجر رو بگیم من یه سوال دیگر رو جواب بدم خیلی ازخواهی میکنم برای اینکه میدانم اصل مباحث میمونه اینقدر پوزن شما این این بحثا اینقدر سوال انگیزه من هستم اینجا تا سوال های شما رو براجرسی آب بدم این سوال جواب بدم بریم سوال. اگر حروف مقطعه آیه در یکی از اون نظام های حفغانه. نظام بصری کوفی مکی خمسی دمشقی مدینه اول مدینه اولا مراجعه کنیم به مقدمه مجمع البیان اگر در یکی از این نظام های هفتگانه که کاتب بر اساس اون داره قرآن رو می نویسه آیه شمارده بشه؟ بله علامت رو چون آیه هست علامت پایان آیه رو می زارن. مثلا نون بر قلم غم آیه اگر این نون رو در یکی از این سیستم های هفتگانه آیه رو در اون سیستم به آیه بعدی به ادامه آیه متاثر کرده باشند و با اون یکتونه شمار داشتند بعد از مایسترون میگذارن بس دیگه داره که حرف مقدره بعضی جاها جز و آیه شمارده شده بعضی جاها نه خب، جرازی به قرارات خاص و های خانش متفاوت که منصوب به صحابه هست و خارج از قرارات سبعه و قرارات رسمی هست یه نکته ارز کردم این یه نمونه است. یه نمونه است که نشون میده بعضی از قرائت‌هایی هایی که منصوب و بعضی از صحابه هست تو نسخه های هجازی فقط پیدا میشه ببینید این آیه 196 سوره بقره هست در آیه 196 سوره بقره در لایه زیری نسخه شماره 0127 این کتاب چاپ شده به نام مصحف سن آی آیک متن کامل این نسخه هم متن اکسیش و هم متن تحقیق شدهش الان تو بازار هست و زبان فارسی هم هست اینم مصحف سنه‌ایه این یک صفحه از اون صفحاتی که روی بقره رو نشون می میده و لایه زیری یک قرآن بوده که یه بار پاک شده و دوباره روش یه قرآن دیگه ای نوشتن اون قرآن زیریه که پاک شده بعد از مدتی جوهری که توش وجود داشته به اثر اکسید شدن با اکسیژن هوا به صورت خیلی کم رنگ خودشون نشون میده به این جهت بهش میگن کالیمسس یعنی پوست دولایه نوشته شده ما لایه زیریشو داریم الان میخونیم که با لیزر از لایه رویی جدا شده. آیه اینجوریه فمن کان منکم مریزان او بهی ادن من رأسهی ادامه راجع به مسئله حج کسی که بخواد حلق بکنه اگر سرش یه مشکل چیزی داشته باشه ادامه میده جواب شرطش میشه میگه هر کدوم از شما فمن کان منکم مریزان ببینید آیه اینجوری اومده در این نسخه فئن کان احدون منکم مر اینجا ایزن ایزنش ای اومده این بعد فئن کان اینجا من در این حاشیه کامل‌ترش این بازکنی کردم اینجورا فمن کان منکم مریضن اومده فئن کان احدون منکم مریض این یک قرائت منسوب به یکی از صحابه جزء قرائات سبعه و اشره هم نیست ما این قرائات خارج از اشعری یا 12 قرائات رو در نسخه های حجازی میبینید. تو فایکوپی شما از این نو قرائات ها بینیم ترتیب سوره ها. آیا ترتیب های متفاوتی رو میشد دید؟ بله تو های حجازی فقط تو های حجازی شما میتونید سوره ها رو با ت... چینش های متفاوت از این چیزی که الان ما میشناسیم و به نام قرآن عثمانی یا ترتیب عثمانی هست متفاوت از این ببینید. این نسخهی ای که الان ببینیم در سن نگهداری میشه به نام صف یک دو شماره صف ببینید در این پایان سوره شعرها و سیعلمون لذین از علمون ایمون غلبن یعن غلبون آیه پایانی سوره شعرهاست بعد از این به رنگ تلایی نوشته شده سوره صافات که خود رنگ این تیکه بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفات یعنی بعد از سوره شعرها شما سوره صافات ببینیم چسبیده به همون نه توی صفحه دیگه همون صفحه بلا بعد از اون سوره 26 هم تمام میشه سوره 37 هم شروع میشه این ترکیب و ما این چنین چیزهایی رو فقط تونسها هایی به جامونده از قرن اول به خط حجازی میبینیم ببینیم اگر نگاه بکنیم به منابعی که از قرون قدیم باقی مونده منابع مکتوب کتاب‌های علوم قرآنی فهرست مثلا من اینجا اوبردم باب و نزول القرآن فی مصحف عبدالله ابن مسعود در از کتاب ابن ندیم اوبردم اینو. از فهرست ابن ندیم نقل میکنه قال فضل ابن شازان و جدتا فی مصحف عبدالله ابن م... مسعود تعلیف و صورت القرآن علا حاضر ترتیب ترتیب سوره های ابن مسعود رو در مصحفش اینجوری دیدیم ما میشماره میگه مؤمنون شعراء صافات ببینید این تیکه. تو ترتیب ابن مسعود شعرا قبل از صافات قرار گرفته یعنی, یعنی دقیقا این صفحه بر اساس انگار این قرآن بر اساس ترتیب ابن مسعود نوشته شده بوده پس ما این یکی از این که در نسخه های حجازی می‌بینیم، و تو نسخه های کوفی دیگه ازش نمیبینیم چرا نسخه باقی مونده باشه قراعت نه، مصحف. بله، بله، باقی مونده. ما چهار تا نسخه با ترتیب‌های غیر عثمانی الان تو دنیا می‌شناسیم، چهار تا. که یکیش همین مصحف مشهد رزویه. عبدت مصحف مشهد رزویه روز اولی که نوشته می‌شده، ابتدا در قرن اول تو مدینه که نوشته می‌شده، ترتیب هاش به ترتیب ابن مسعود نوشته شده. ولی دو سه قرن بعد بعدی این نسخه دیگه همه ترتیبها همه عثمانی شده همه اون رایج بوده اون موقع دو سه بعد یه تیمی یه گروهی نمیدونیم در کجا شاید در ایران احتمالاً شاید در نیشابور اینا همه حادثه اومدن سوره ها رو درست کردن یعنی ترتیب سوره ها رو مرتب کردن متنش که همون متن یعنی سوره ها که متنشون فرقی نمی ولی اومدن انتهای مثلا سوره رو از اون حالت ابن مسعود در آوردن به حالت امروزی که مجبور شدن یه تیکه هایی از اون آخر سوره ها رو بازنمیسی بکنم برای این اتصال چسب و قیچی درست بشه این تصویر خواهیم دید. ولی داریم، سه چهار تا مجموعا داریم این بحث رو ازش من میگذرم چهار تا دلیل آوردم که چرا باید ما ممکن کسی دیگه اون نسخهای حجازی این هم که شما میگین قرن اول و قدیمی هستن و اینا اینجوری نیست نه ممکنه تو قرن پنجم نسخه خوا نوشته شده باشه ممکنه تو قرن چهارم نوشته من چهار تا دلیل آوردم که بگم چرا بر چه ازاصی ما میگیم اینا مقدم هستند بر نسخه هایی که به خط کوفی از قرآن نوشته شده مهم یعنی وجه جامعه این چهار تا دلیل این است که تمام اون ها، تمام اون غرابت ها، این ترتیب سوره های عجیب و غریب این قرائت های عجیب و غریب این سادگی ها و شلختگی هایی که تو سطح میبینیم هیچ تضیینی نداره اینا،, اینا همه تو قرون بعدی کامل میشن یعنی همه این غرابت ها از بین میره ترتیب سوره ها همین میشه که الان ما داریم املای کلمات همه درست میشه یعنی کامل میشه علف ها برای قاله و کانه گذاشته میشه تضعینات و سرسوره های خیلی جدید و شکیل و مرتب نظر سطح بندی، صفحه بندی همه چیز نظم پیدا میکنه ما از دیگه بی‌نظمی آرام آرام میرسید. مثل این گوشیایی میمونه که الان خیلی پیشرفته هستن. روز اول نسل اولیه اینا 30 سال پیش یه چیز خیلی ساده‌ای بودن. اینقدر پیشرفته نبودن که شما در آن واحد بتونی یه عکسی رو از اینجا بفرستی به کانادا یا تصویر رو با واتساپ بفرستی و نمیدونم کره مریخ. نهایتش این بود که شما می‌تونستی یه زنگ بزنی. بعد از یه مدت یه چیزی اومد به نام اس مثلا خیلی ساده بود. ما همیشه سادگی پیش می. این بحث، یه بحث تاریخ علمیه. چون باز ما با مباحث دیگه خیلی کار داریم من اینو خیلی بهش با جزئیات نمیبرم ولی اجمالاً خلاصش این چهار تا دلیلیه که بخوام نشون بدم چرا اینا باید مقدم باشن البته ما دلایل دیگه هم داریم یکی از مهمترین دلایل اینکه که نسخه های حجازی برگ هاش که همه اینا از پوست هستن در آزمایشگاه شما میتونید ببرین این پوست ها رو آزمایش بکنین یعنی یه تکه خیلی اندک و کوچیکی از این رو سالیابی بکنید. که حدود تاریخی شکل اون پوست رو به شما نیشون میده آزمایشگاه و این یه یعنی عمر که تو باستانشناسی تو برحال تو همه امور در حال که کشف میشه همه منو چیزهایی که منشأ حیوانی یا گیاهی دارند انجام میشه تو دنیا یه یعنی امر رایجی. شما پوست این قرآنهای قرن اول، دوم سوم و چهارم رو میتونی ببریم آزمایش رو و این کار انجام شده نسخه‌های حجازی پوست برگ‌هاش از نظر سالیابی آزمایش کربن دیتیک همه مقدم هستند بر نسخه‌های کوفی خب حالا بریم سراغ مذهب مشهد رضوی امیدوارم که تا اینجا خسته نشو الان ساعت 9 و 18 دقیقه است. من می‌دونم کل جلسهمون تا یه استراحتی بکنیم بسیار خوب من یه خلاصه الان خواهم گفتم میریم سراغ استراحت یه 10 دقیقه یه رو بعد شروع کنیم دیگه بله از الان او جواب میدم من ادامه جلسه این چیزی که ارتکردم خدمت شما یک تصویری از کتابت قرآن در قرن اول دوم اونم خیلی سریع و با کلیات بود در ادامه جلسه من میخوام مصحق مشهد رزوی رو به عنوان یه سند به جامانده از قرن اول معرفی بکنم که حالا بعد از استراحتی که حالا خواهیم داشت ده دقیقه بعد برمیگردیم و انجام میدیم حتما نظر شما در این مباحثی که من عرض کردم سوال‌های خیلی زیادی تو زمینه‌های مرتبط با کتابت قرآن که در قرون بعدی هم ادامه داشته و رواج داشته مثل قرائات مثل عبدالایی مثل نامگذاری سوره ها مثل رسم و املاء کلمات یا ترتیب سوره ها پیش آمده من اگر فرصتی بود در پایان جلسه به برخی از اونها هم یعنی بر بعد از معرفی مرتب مشهد به اونها هم خواهم پرداخت مصحف مشهد حالا قبل از اینکه بریم بیرون مصحف مشهد رضوی اسمیه جعلی. یه نامی است که ما روی یک نسخه خاصی گذاشتیم که اون نسخه رو با شماره و اینا دیگه نكای معرفی بکنیم در کتابخانه آسان قدس رضوی نسخه های قرآنی بسیار متنوع و زیادی از قرون اول، دوم، سوم تا همین دوره صفوی و قاجاری نگهداری میشه. تو نسخه های کوفی قدیمی که با خطهای اولیه کتابت شده یه ای وجود داشته که هیچ کسی توجه به اون نسخه نمی کرد و اتفاقا از قضا اون مهمترین نسخه و گنجی بوده است در آستان قدس رضوی که از قرن پنجم هجری، از, از پایان قرن پنجم هجری وقف شده بر حرم امام رضا علیه السلام از سوی یکی از مقریان اهل سنت در نیشابور. و از اون زمان حدود هزار سال این نسخه اینجا نگهداری می شده این نسخه تنها نسخه به خط حجازی است که در ایران وجود داره. الان که شما با نسخه های حجازی اجمالاً آشنا شدید، با خطش، با های درون نسخه های حجازی آشنا شدید و فهمیدیم که تو نسخه های حجازی چه چیزایی پیدا میشه که دیگه تو نسخه های کوفی و قرن 2 و دیگه پیدا نمیشه، الان میتونیم به ارزش این نسخه قرآنی که در کتابخانی آسان قدس عزیزی به عنوان یک سند کهن قرن اولی برای اثبات وثاقت متن قرآنی نگهداری میشه پی ببریم. این نسخه وقتی که وقت می شده در قطع خیلی بزرگ عمودی هم هست وقتی وقت می شده در دو جزء صحافی شده چون خیلی سنگین بوده از آغاز تا پایان سوره که در یک نسخه شماره نسخهش هست هجده و از سوره مریم تا پایان قرآن در بخش دوم صحافی شده و واقف این دوتا رو با هم دیگه وقت کرده به عنوان یک قرآن کامل تقسیم بندی قرآن هم یه امر رایجی بوده در دو جز، در چهار جز، در هفت جز به خصوص قرانایی که خیلی سنگین می شده این کارو انجام می‌دادن. در میان نسخه های حجازی که تو دنیا الان شناخته شده هستند و در کتابخونه ها و موزه های بعضی هاشون مثلا دو برک، سه برگ هستن، نگهداری میشه، بعضی هاشون 10، 15 برگ از یه نسخه باقی مونده، نسخه مصحف مشهد رضوی یه فرقی که داره یا یه اهمیتی داره اینه که حجیم ترین و کامل ترین نسخه هست یعنی ما کامل ترین نسخه حجازی نمیگیم کامل کامل قرآن چون بالاخره هر نسخه ای از اول و آخر و وسطش خیلی اتفاق می افتاده در طلاطم ایام یه چیزایی گم بشه حذف بشه پاره بشه آسیب ببینه پرسوده بشه این اتفاق نمی یعنی افتاده و خیلی نسخات نسخه ها دو سه برگ بیشتر ازشون باقی نمونده اما اینکه از این نسخه 252 برگ باقی مانده یعنی ما چیزی بیشتر از 90 95 درصد متن قرآن رو در اینجا در اختیار داریم این اهمیت این اثر رو در میان نسخه های یا سندهای باقی مانده قرآنی از قرن اول می‌رسونه و این افتخاری برای کشور ما برای آستان امام رضا علیه السلام که چنین اثر ارزشمندی رو به دنیای ارز به جهان اسلام و به جهان محققان ما در دنیا ما ارائه می میده من یک دو سوال جواب میدم برای اینکه خسته نشم دوستان یه استراحتی می‌کنید دوباره بعد بفهمید دار میگرده به رسم دیگه و رسمی که حالا در مرکز طبانهش قران جمهوری اسلامی مثلا رعایت میشه در, می در قرآن های چاپ پاکستان یا لیبی رعایت میشه قرانی که بوده از عربستان به حجاج داده میشه به مجمعه ملک فهد وارد شده در رسمهای ایرانی که از قبل از انقلاب بوده اینکه کدوم سیستم کمکون الان چون آموزش پرورش میخواد در کتابهای آموزشی خودش این موضوع بحث من نیست منم نمیدونم در این زمینه باید چه مشکلی رو حل کرد آموزه رایش میخواد از سیستمی استفاده بکنه که هم آموزشی باشه و هم از سوی اهل سنت به تحریف و اینجور چیزا متهم نشه احتمالا از همین استفاده کرده ولی باید شما بالاخره به اون قرآن آموز یاد بدین که این رو آخر بخونه و آخر نخونه بفرمید یه سوال دیگه من جواب نمید خیلی حساب کنم بله شما هستین بله با خود شما هستن بفرمید نمی تونیم دقیقاً بگیم چون دقیقاً کدوم از اینا تاریخی در فایدانش نوشته نشده که قابل اعتماد باشه و آزمایش کربن 14 هم هیچ وقت دقیق دقیق به شما نمیده که در چه سالی این پوست نوشته شده یا تولید شده ولی یه بازه زمانی به ما میده عموم این قرآن های به خط حجازی عموما متعلق به یا نیمه اول قرن اول یا نیمه دوم قرن اول هستن یا بعضی از اینا اوایل قرن دوم ولی با هم همپوشانی دارن ما نمیتونیم دقیق بگیم که کدوم یکی در قدیمی ترین زمان کتابت شده بله. منم اینجوری نشون دادم دیگه گفتم مصطفی صناعی کتابش هم من چاپ کردم نه قدیمی ترین نیست ولی یکی از کهن ترین نسخه های قرن اوله دست کم به نیمه اول قرن اول میرسه بله خیلی تا از ما دارم، دقیقه دیگه شروع میکنیم سلام عزیزی، من <تصفيق> جایسه استرات تشریف می‌بارید اگه چیزی می‌خواید براتون بیارم چای نمی‌خواید